بسم الله الرحمن الرحیم گروه سرود آشغال مصطفی از مرکز علوم قرآن سوران تقدیم می نامد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما کان محمد آباد من رجالكم ولاك الرسول الله ولاك الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علما صدق الله العظيم دل مشتاق <تصفيق> سماه محمد بسردار تم نعي محمد دوچشمم گشته از عشق تو بیدار به دل سوز است و نجوای محمد دلم مشتاق سیمای محمد به سردارم طمنای محمد دوچشمم گشته از عشق تو بیدار به دل سوز است و نجوای محمد به دل سوز است و دلم مشتاق سیمای محمد به سردارم تمنای محمد دو چشمم گشت از عشق تو بیدار به دل تو و محمد به سوز سوزست و نجوای محمد نباشد شادی بالا تر از آن که باشم به شیدای محمد نیان پرد شد تصفیل تابوس زنور زی نخش زیبای محمد زنور زی نخش محمد دلم مشتاق سیمای محمد به سرگارم تمنای محمد به چشمم از عشق تو بیدار به دل درسون است که ما جوان محمد ملائک جملگی با عرش و کرسی بیام در تقاصای محمد سپس نو قلم با ما خرشیر شدان دند در تملای محمد شدان دند در تملای محمد دلم مشتاق سیمای محمد بشر نوای محمد دو چشمم گشت از استری تو بیدار بد دل سوزاست نجوایه محمد بد دل سوزاست نجوایه محمد کواک در سموات از وجودش اسیر عشق لولای محمد خوش آبو ای که آلم در نوردید زموی ام براسای محمد زموی ام محمد دلم مشتاق سیمای محمد بسردارم سر محمد به چشمم از عشق تو بیدار به سوز است و محمد به دل سوز است و محمد قصور پادشاه انواجی گم شد به عزم حیبت آسای محمد به شد آتش کده از شون خاموش زمیلا دوم و نادای محمد زمیلا دوم و نادای محمد دلم مشتاق سیمای محمد به سردارم تنم اشق تو بدل سوز تو محمد بدل سوز تو محمد بدل سوز تو نجوه محمد